وست افی کدهک ولا تکن خازنن لغیرک ولماید پسرم در کار و کوشش جدیت کن و تا می توانی زحمت بکش و کار کن ولی لا تکن خازنن لغیرک برای دیگران پولا رو جمع نکن پوشش بکن زحمت بکش خوب فعالیت بکن برای پول در خوب فعالیت بکن ولی خازن خزینه دار دیگران نباش. وقتی آدم روایات کار و کسب و تجارت و زراعت رو که میبینه در یک اهتمام عجیبی پیغمبر و امام به این کار دارند از نقطه مقابل بعضی از افکار که مثلا آدم خوب نیست که از دنیا کنارگیری گیری کنه و معنی کناره گیری از دنیا اینه که یا کار کنه نه کسب کنه نه فلان مشغول دعا و نماز و فکر بشه این نیست در حدیث معراج که نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله در معراج تشریف بردن مطالبی در اونجا مذاکره شده و دستوراتی خدای تعالی به پیغمبرش داده یه جمله است. فرمود یا احمد الاباده صلی الله علیه محمد والد الاباده اشرت و اجزا منها طلب الحلال عبادت ده جزء نه تاش طلب حلال کردن است فعضا قیب و و کب و مشرب حفظی و کنفی اگر غذا قضا و قضایی که میخوری و شربی که میکنی آبی که میخوری شربتی که میخوری حلال باشه تو در کنف و همار من هست مهم ها عبادت نوه جزء عبادت طلب حلاله در حدیث دیگر رسول الله علیه و آله فرمود طلب الحلال فریزتون علی کل مسلمن و مسلمن طلب حلال روزی حلال طلب کردن بر زن و مرد مسلمان واجب باید کسب حلال و مال حلال گیر بیارن زنو من عرض می شود به اینکه بنده خدایی گفت یه پیرزنی رو خیلی پیر بود دیدم داره نخ میریسه پنبه برداشته داره نخش میکنه حالا یا پشم یا پنبه داره نخ میریسه گفتم پیر شدی نزدیک به تعبیر من مردنته ول نموگون دیگه نخ رسی رو گفت چگونه رها کنم و حال اون که شنیدم از امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود خوبم من تیبات الکسب کسب طیب و پاکیزه یکیش همینه نخریسیه کلوم تیبات کسب سبتم که تو قرآن داره امیرالمومنین فرموده یکی از کسب های پاکیزه همینه که زن تو خونه که نشسته نخ بریسه و از این راه پول در بیاره یکی چگونه ای رو رها کنم که خودم از امیرالمومنین شنیدم که این جزو تیبات کسته عرض می شود به اینکه که امیر در حدیث دیگر میفرماید. فرماد فرماد اوسیکن بالخش من الله فی السر و از خدا بترسید در آشکار و پنهان و اکتساب فی الفقر و اگه فقیر هستی یا غنی هستی کس تو رها نکن کار دیگه بیشتر اینقدر روایت بریم الاماشا یه بنده خدایی آمده و خدمت از ساده و سامو با علای در ذهن نمیشه <تصفيق> حضرت اون فرم شخت حالش چطوره از کرده ابن خوبه آقای خوبی هم هست ولی تجارت رو رها کرده فرمود عمل شیطان راها کردن شی... شای کار شیطان رو کرده تا مطابعت از شیطان کرده برای چی رها کرده مگه نشنیده که رسول الله صلی الله علیه و آله فلان جنس رو از فلان طایفه و از قافله خرید و فروخ و از درآمد او قرضاشو داد و از درآمد او به ارهامش کمک کرد و از درآمد او چنین کرد مگر اینا رو نشنیده مگر نشنیده که خدا در قرآن میفرمايد رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بيع عن ذکر الله و اقام الصلاه رجالی رو خدا تو قرآن مدح میکنه که تجارت و کسب مانع انجام وظیفه اونها و نماز خوندن اونها نمیشه بعد حضرت فرمود اونی که کسب و تجارت میکنه و نماز و وضائفش رو به طوری که شارع دستور داده انجام میده این افضل است از اون کسی که نماز رو رعایت میکنه و تجارت نمیکنه این انقدر اهمیت داره کسب و تجارت و حالا نمیخوامیناشو بگم دیگه هر موقعش هر... یعنی روایتش خیلی زیاده که ما به مواقع مختلف بگیم حالا جمله دبوبه مشم یه ذره اشاره میکنم و تموم میشه فرمود کدح و سعی و کوشش زیاد بکن و پول خیلی در بیار ولی لا تکن خازن من پولا رو برای دیگری جمع نکنیم چی میتونی انفاق کن در راه خدا کار کن و فعالیت کن و این رو در بیار و بده این ارزش داره برای دیگری نمیخواد جمع و به تحبیر من گوثه دیگر آدم نخور بچه ها من چی تو اون میشه همین رو مومنی بچه های تو یا از اولیه هستند یا از دشمنان خودم اگه از اولیاء خدا خدا اولیاءشو فروگذار نمیکنه، تو نمی خواستش بخور. اگه دشمنان خدا هم اصلا تو حالی دعایی داری به دشمنان خدا همگاه هموالی کنی تو چی مربوطه بنابراین قصد نخور بلا تکن خازنان لغیرک خازن برای غیر نبا در روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود سعلوک پیش شما معناش چیه؟ کتاب کتابو داره سعلوکی رو دیدم که چی چی؟ قال من لا الا گفتن اونی که هیچ نداره گداست. رسول الله صلی الله علیه و فرمود بل سعلوک سعلوک در نظر من آدم گدا در نظر من من لم یقدم مالهی شیعن اندالله کسی که مالی نفرسه قبلا در پیشگاه خدای تعالی ولو مالش خیلی هم زیاد باشه ای سعلوک است ای فقیره ای دست است وارد میشه اون دنیا هیچی نداره این گدا اینه سعلوک اینه در نظر تو بال من اکتسبم مالن فیغیرم اصیه و انفقه فی غیر معصیه و عاد بهی اهل المسکنه خوشا به حال اون کسی که مال به دست بیاره اما از راه حلال باشه و مصرف کنه ولی در راه حلال باشه و به وسیله این مالش اهل مسکنت رو اداره کنه و اونها رو رعایت کنه اللهم <تصفح> صلی <تصفح> So hey.